لحظه دارینا سوال و عزیزه مجموعین اللهم خیلی عزیزه شده دیم رحمنا برحمتی رحمت رحمت رحم. از که از قریم که از مواعظ مقدماتی که در اینجا در علاقه بحث و حصول. محل بحث قرار گرفته این است که آیا حدله شامل حدله حجیرته مارات و قصول شامل مقلد هم میشن یا خیر؟ یه مقدار کلمات محبا استاد و آزیار و از رو متعبس شدیم یکی از اشکالاتی که پیش آمده در همین قدبات که شامل نمیشه و اطلاقات احتساس و مشتهد داره این را مظلم های در نهایت و درای شرح کفایه فرموندن جلد سه از همین چاپ جدید صفحه سیز به اصطلاح سیزده بله ایشان در شرح عبارت معد چون ظاهر معد کفایی اینه که ایشان هم تأمیم میدن به مغلق ایشون فهمم وجه و تخصیص المکلف بالمشتهد این اینکه این عدله اختصاص مشتهد داره لیکن حکمش آمه هو نعناوین موضوعات احکام ظاهریه اینجا نویسته لا یعنطب قلط لا الا تنتب این یک راه بود راه این بود که خود این عناوین مثل یقین و شک لا تن طبق الا الى المشتری فه این نبو الَّذی جا اشاره بایه نبه اینو در مسئله به اصطلاح امارات و خبر واحد او جا احوال حدیثان المتعارضان این یکی از فروع اماراته که توضیح دادیم مثل امروات امروان هنزره اختصاص و داد و هو الَّذی ایغنه بالحکم کلی اشاره به یقین و شکی که در استثابه و شک که بله و حاکر الا انه محضوره ازم و, و ارتباط و حکم مقلد به اشکالی که داره این است که حکم مقلد به ارتباط فلای و فی حقی تصدیق و عملی در حق مقلد این اشکال که اون روح اصطلاح احکام ظاهری حالا اسم احکام بذاییم و هر چی شامل مکلف مقلد نمیشه تسقیق عملی جریان عملی نقض عملی ابقاء عملی ثمانیه عن عنوان به عنوان موضوع لیس له تسقیق عملی مقلد تسقیق عملی نداره و من له تسقیق عملی که مشخص باشه لیس علیه العنوان بهتجه الیه و من تعرف ان محظور لیست مجرد عدم تمکنه المقلد. این اون اشکال فحض نیست ان المعارض یا بحث از ترجیح یا بحث از عدله لیوت فحض تا این که اون جوابی که دیروز کردیم به قیام المشتهد مقام المقلد. بله فی مازوکر بل المحضور مازکرنا این اون حناوینی که عرض شده اقتصاد مشتهد داره به این خسلت ها مالونه این اشتاد ویندفه او به ما زکرنا این اشکال رو میشه آب بدیم در مباحث اشتال تقلید بین اند ادلت الافتا و الاستفتا با تنزیل المشتهد منزلت المقلد بازه ایشون راه سبو می رو گرفتن نه مسئله نیابت، نه مسئله رجوع به خبره بلکه مسئله تنزیل تنزیل المشتهد منزلت المقلد سیکون مجیء الخبره اله به منزلت مجیع الخبره مقلده؟ و, و یقین و شک او منظر یقین و مقلده بشک فالمشتهد هو المخاطب و عنوان مشتهد مشتهده ول مقلد هو المخاطب در لب واقع واقعه او میخونه و لا لکان تجویز و لا افتا ولی و لا افتا و مقلد هم مخاطب است. این مطلبیست که ایشون جواب دادن این مثال تنزیل هم از اون مسئله نیابت هیچ کم نمیاره اصولا این که شو میتونم به الله لکان تجویز و افتا و استفتا لقوان عدله افتا و استفتا مستقله رفت به عدل اولیه نداره اون عدله اولیه شامل مشتهل میشه دلیل آمد که شما که براتون احکام واضح نیست عدل واضح نیست میتونید برای به کسی که واضحه مراجعه کنید. این یک حکم آخریه که اگر ما این حکم رو نداشتیم مختزای قاعده رو جویبون مشتر اصلا جایز نبود ظاهرن در همین بحثا سابقا از کردیم یک وقتی ارز کردم ما در میان علمانی شیعه در اخباری ها اده از اخباری ها و شیخی ها بهشون نسبت داده شده که اصلا تقلید درست نیست هر کسی باید خودش برواد مراجعه کنیم روایات هم متعارض هستند نه تعارض کارنده روش است که اون قاله تاخیر بشه مثلا رو بشه مثلا تعجید رو داره جایز نمی‌دونه این تصور ایشان که مخاطب لبی مقلده ولو مخاطب عنوانی مشهده چرا چون اگر این نباشه خب افتا و استفتا معنا نه افتا و استفتا به این نکته نیست تعجب از مقام ایشان افتا و استفتا به دلیل آخریه که اگر دلیل آخر نبود همه مکلس بودن خودش رو مشتهد بشن. حالا سیره اتحاقه هست، سیره مابرد هست، سیره آمه مسلمین هست، روایات این معلیه مساهم کرده تغییر امضا کردن هست. نکات دیگری مطرحه. این نیست که این مخاطبت لبن و اون مخاطبت عنوان هم که ایشان جواب دادن. انتحاقا جواب ایشان هم روشن نیست. ایشان از راه دیگری بله. وارد شدن باز و معها کله با تمام این حرفا و تعمیم المكلف الی المشتهد و المقلد در عبارت مرحوم شیخ مکلف هر دوش شامل بشه و تعمیم حکم ایزن که هر دو رو بگیرد مراد از حکم در اینجا اون صدقل عادل اذا جاء مراد از حکم اینه نه احکام مثل وجوب نماز و اینا اینکه مسلمه احکام برای همه است مراد از حکم در مثل استصحاب لأن جمله من احوال دلیل ایشان باذینه جمله من احکام الغرض و اصول عملیه تعامل مقلده ایزه فلا وچه تخصیص به مشهد اونها شامل مقلده هم میشن پس نکته ای در تخصیص نیست اصولا این من میخواستم عبارت ایشان خونده بشه اصولاً در لسان این جور ادله مسی اینکه سوال میکنه دو تا حدیث داریم یکیش ادی وش عمل کردن ادی عمل نکرده ادی مطابق با آمده مثلا در همه روایت آماد نهندزله سوال میکنه این دو تا حدیثی که شما میگین مخالف آمده ما گاهی وقایع حدیثی داریم از شما مخالف با آمده است در روایاتشون اما موافق با آمده است در سیره عملی خارج دستگاه خارج دستگاه مثلا قضایی غیره عملن رئیششون اینه اما روایاتشون اون نیست خب این رو فقط مشتهد میفهمنی که مقلص سریشون میشه این طور روایت در نظر این فرض اینه که گایی اوقات شما میگید مخالف آمنه رو بگیر گالی اقارد روایتی از شما میاد با روایات امر مخالفه اما با عمل خارجی با دستگاه با در دست سلطه موافقه با روایتشون دین یاد اما با سلطه ما شما مراتون از موافق و مخالف چیه کدوم که اعتباره آیا مراد شما امام صادق از مخالب با غرض سیاسی یا با روایاتش مبدعه وضع... مثلا فرنگی قدیمشون امام میفرما نه مراد ما با هم غرض سیاسیه اون دیگه در شبهه تقیه حامد سیاسیه نه روایاتی که واسه اون در یک کتابی آمده که بشه عمل نشه پس بنابراین فهم این مطلب یه چیزی نیست که مقلد اساساً او بر بیا اگر واقعاً مقلد تا این مقدار اطلاع و که رو خودش مشتعل بده یه درجه بحث این نیست که این مخاطب از لبن اون مخاطب از عنوانه که ایشون در جواب فرمدن یا مسئله تنزیل تنزیل بی یک معنایی بدتر از نیابت یعنی اون رو باید درجه وسط اراز چون تنزیل معناش این است که تا سه تا عنوان درست شد یکی عنوان نیابتی در کلمات شیخ او دو مرموم آزیاف هموندن یکی مسئله تنزیل که در کلمات مرموم عقی اسپانی آمده یکی مسئله رجوع الا اهل خبره که در کلمات استاد آمده که مقلد هم به مشت رجوع می‌کنه مثلا مشخص اینجا بیان نیست مقلد به رجوع میکنه از جهت رجوع جاهل به عالم رجوع به اهل خبره مرحوم آهای شمس میفران از این که تنویل از جهت اینکه تنویر میشه مرحوم ها شیخ آه ماهای عراقی میفهمون اجزت مییوبت ما معیارهای اینا رو عرض کردیم مییوبت اصولا در جای تصور میشه که اون معنا و اون مطلب عرض شده شودوش به نحوه طریقیت اون توش نیابت معنا داره مثلا مثالی که اراد کردم مثال در روایا اون که به اندازه پتاوی یک به اساطیر انسان بر فرس بکنه در بیابان از آب اگر 50 نفر در یک باشن دو نفر برم فرس بکم بس کافی اجاز داره که همه 50 نفر برن تا اون البته سم دارن دو برگردن اجاز به این چین چیزی نداره دو نفر نفرم برن بس مثال دیگه هم فرض یک دکتری برای شما مثلا نص... آزمایشی می‌ریسه آزمایشی بیاریم بعد جلوی دکتر می‌بینید که اینجا چی نوشته مثلا میگه قند شما سر در درجه شما ممکنه واسه انگلیسی برداشت نباشید اینجا شأن دکتر شأن نیابته چرا چون یک مطلبی در ورقه نمیشه شده شما توی بکنیم اون میخونه برای شما اما اگر دکتر هم برگه رو خون گفت شما سرطان معده داری اینجا شأنو خب اینجا دیگه نیابت دین ممکن است یک دکتور دیگه هم ورقه آزمایشی ببینه بگه نفر شما سازم ندارید این فرق بین رجوع الاهل خبره و نیابت پس در نیابت جایی انس میشه که تریقیت صرفه هیچ هم نداره شما نمی‌توین بکنه اون برونو میخونه شما نرفتیم ببینید آب هست که دیگه میره این اسمش نیابت رجوع الاهل خبره که من استاد فرمودن نه اون مقتنص بر حسب و علمی و اعمال قواعدو بیان تعارض و اختلاف و مثلا اینقدر شما اینقدره یکی دیگه چیه اون اوضاعش چیه احوالات این مجموعه امور رو نگاه میکنه اون وقت به شما خبر میشه که شما مثلا نسبت سرطان معده دارید یا سرطان روده یا مرض نازداغی یا مثلا ناراحتیه جزئی مختصری تل میشه این میشه رجوع داخلی اما تنزیلی که قرارن عرض کنیم اعطاء حد شیء غیره هیئت تنزیل اینه مثل که شما گیید زیدان اصدون که از زید رو لباس انسانیت رو ازش خارج او که اسدیت اصدیت بشیدید حد اصدیت بر اون میکنید تنزید در اینجا معناش این میشه که شخصی که مشهد نیست شخصی که قابلیت نداره بفهم بیان ولا بیان رو این رو به منزله شخصی که میفهمه قرار میده چرا میفهمه؟ چون گفته به او رجوع بکن این تفسیر است که محوم آش همین که بفت شما رو جو بکن به مشتهد معنیش اینه که من قطع و شک و زن و حق سه مشتهد رو منزله مقلل قرار دن ایشون تفسیرش اینه یعنی ایشون تفسیرش اینه که عدللهی که آمده یک نواسته این عدلله نسبت فرصول درش عنوان شک و یقین و جعال حدیثان و تعارضان و و, و اینها این مراتبی که درش هست اینها رو مشتهد میفهمه اما این حکم که شما باید اصل بخیندی اون رواد احساس مشهر نداره مخاطب واسه فقط نه میگن برای همه هست پس این رو آمده اینجور تفسیر کردی یه تفسیری در حقیقت اون ادله ای که میگه شما به مقلد, مقلد به مشهد مراجعه کنی به فقيه مراجعه کنی آمده مقلد رو به منزله مشهر قرار داده تنزیل کرده مقلد رو از حده علمش خارج و همون علم مشهد همون علم فقی به درد مقلد میخوره همون شکش به درد رو بیخوره همون که او تشکیز میده که اینجا خودم حدیث مخالف با سنته خودم یکی موافقه با اهل این به درد مقلد هم میخوره یعنی تصور ایشان اینه یک دلیل واحد داریم خب دقیقا اون دلیل واحد اگر بخواد دو نفر رو با اختلاف علمیشون شامل بشه با تنظیل بگیم تفسیر. نقطه تفصیل ایشان. و الله تانه عدل لطل افتاق ولی استفتاق لغوند این مرادیشانه جوابیشانه این که این دلیل واحد نیست این دلیل دیگر آمد که آمی روجوع بکنه به مشهد و اگر ما بودید این احتمال قیل برستن برزد از اخبار ما معتبره همه باید مشتهد بشین این شد تحت تقلیب نداره این دلیل دیگر آمد یعنی همه باید خود کتب خبر محافظه آمد, و خبر مخالف آمد. پس این نکته ایران که مرحوم, آزی، مرحوم آقای اسفانی پر بودن مسئله تنزیل این یک زیربنای علمی داره که اون زیربناش قابل تصدیق نیست ایشون عدله رو یکی گرفتن لذا مجرور در مقلد قابل به تنزیل بشن راه اخیر هم که ایشون گرفتن اینست که بعض از اخکام قبل شامل مقلد میشه پس یا مثلا بعضی از اوست پس ما بگیم که اینها در مقلد احکامی که راجبه حکم فرعی کلی شامل مقلد نمیشه ما نداره چه حکم من از کردم مرحوم شیخ رحمتullah اعلام اندر مکلده بذل کذا به حکم شرعی از حکم شرعی فرعی کلیه مراد شیخ اینه همونیست که کنه استنباته نه موضوعات خارجی این لباتونام فاق بود حالا به حساب بها این مراد شیخ نیست و نه احکام جزئی مثلا پشترین آقا نماز میخوندیم جایز بود نماز خوندن این اصلا مرادیشان نیست البته عبارت شیخ تأمین داره علم امن المکلل ازلتفت علا حکم شرعی لیکن مرادیشان اون که وظیفه مقام اشتهاده اصلا به لحاظ قرنه حجج و امارات و اصول عملی مقام اشتهاد مرادشه غیر از این کارو من سابقا این کردم این رو مرهوم آیه میرزا اشریزی راضی برابر مجدد و شاگرد این دیگر ایشان مرحوم آقای آشتیانی در حاشیه مفصلی که بر رسائل دارن بحث او که اخیراً زحمت کشیدن چاپ کردن تحریر سیاحوبی کردن و هم کلی مرحوم مجدد که تقریرات ایشان تاج از آثار مرحوم اشریزی چیزی چاپ نشده بود تقریرات ایشان تازه چاپ شده در جلد 3 تقریرات ایشان ایشو میرفرد سنه نافی مجدد از شش که مراد من از حکم شرعی حکم شرعی کلیه مراد شیخ هم, هم با این باشه. حالا تصریح هم داره شيخ. البته مرحوم میرزا شیرازی بجای تنزیه قرائت نا علیه الرساله الکرمی اولش مش وسائل نبود رسالت و حجیت المزن بود. و اینم اینجور نبود اول المخط اول فلقه بعد از این مقدمه که شیخ گفته علما مکلفان اینجور بود. اما القد بجای المخط بعد این عبارت المخط اول فلقه اضافه شد. اصل این نبود توی نسخه اصل مرحوم شیخه انصاری نبود. ابرر دیگه بود این بود عمل بعد... قهر بغضیفن... اصلا مقصد نبود بعديها چون اینو مقصد قال من نسخه چاپ زمانه شیخ الان تو ذهن نیست یعنی در اختیار من هم نبود نسخه چاپ زمان شیخ بیرون در اون نسخه که در زمان خودشه اینو رسائل در زمان شیخ چاپ شد مکاسل نه آیا در اون نسخه چاپ زمانه هم. شیخ همون نسخه اصلیه یا اون به اصطلاح تغییری که بعد در رسائل شیخ چهار رساله ایشون دادن به هم جمع کردن. یه جنب حالا یه تغییری علاوه شکل فرم پیش دادن اون الان تو ذهن من نیست اون اگه نگاه کردن در کتابخونه هست شاپت که زمان خود مرحوم شه انصاری شده مدلسرو شيخ علی کی گفت ما خواه. پس این مطلبی هم که مرحوم هاشمی فرمودن انصافا این هم قابل تصدیق نیست چون ما چیزهایی که در احکام کلی داریم منحصرا در اختیار مشعتی البته ما اصلا بحث دیگری هم داریم که بعد در مباحث بعدی روشن میشیم. از بر ذاله کلی صحیح در مقام اصولا اینه ادله اصولا طبیعت ادله نه اختصاص به مجتهد داره نه اختصاص به مقلد داره اصلا بعض لبن و صورتاً و عنوانن درست نیست این ادله دارن قاضی یقین به شک ببینید طبیعت دلیل اینطوریه مثل اینکه یه دکتری به شما میگه شما برای تغییرات خودتون خوراک بخورید غذا بخور یا کلوپشتا برای توتر این توش نداره که مثلا شما که در یک مریض خاصی رو بنو مزاج خاصه غذای سرد می‌خورید غذای گرم بخورید غذای میانه بخورید گوش بخوریم، تخم مرغ مثلا ناظر به این مقام نیست یک جای تشخیص نمی‌ذین دکتر براتون تشخیص بده یک جای خودتون تشخیصو خودتون انجام بدید این کلوب اشربو ناظر به یک تنق معین نیست ناظر لاتن تنق از یقین به شر اولا یه بحثی داره که مثلا هیچ اوقات حکمی کلیه که الان محل کلام ماست اصلاً لا لاثنقض میگیره یا نمیگیره این بحث کلیش اینه به نظر ما نمیگیره به نظر مرحوم استاد میگیره لکن به تعارض ثابته به نظر بقیه میگیره و هیچ مشکلی هم نداره اصلا استصاب به نظر ما در حکم شغه در شوبات حکمیه کلی جاری نمیشه حالا اون آینی که جاری میذارن اونا هر اینه اینی که لاثنقض یقینی به شک این مطلقه چه مقلد چه مجتهد بل راست مطلق که کوچیک، اصلا نظر نداره این که مطلق اصلا نظر نداره که کوچیک باشه بزرگ باشه زن باشه مرد باشه مشتهد باشه مقلد باشه آجز باشه قادر باشه اصلا نظر به این حالات نداره کلن نظر اون, اون خودش یک تطویق واقعی داره مثلا میگن قصد و شک یقین و شک اون تعماله با یقین و شکیزی در لسان زیل عقص شده اون یقین و شکیز که امرش مخاطبه. و تعامل رو این لا تن یقینه یقین به شک اون جایی است که یقین شک در اختیار منه مثلا من یقین داشتم به طهارت اگه شک دارم به طهارت خب من میتونم شکم بردارم تبدیل به یقین بکنم وقتی ان وضو میگیرم شو اون جایی است که دست اگر مورد از یقین و شک این باشه بحث انصراف که دیروز از کرد اگر مورد از یقین و شک این باشه طبیعتا برای شخص مخلص یقین و شک در احکام معنا نداره تو دست اون نیست اون از یک آقای تقلید میکنه میگه بله من اینجا یقین و شک دارم بعد تقلیدش عوض میشه یک آقای دیگه میگه من نه یقین و شک ندارم یا یقین نیست یا یقین دارم شک ندارم این یقین و شکی که مقلد داره چون تابع دیگری مثلا فرض کنید یک آقای میگه من فهمردم بیان پیدا نکردم قرب به عقاب بلاvare بسیار یک آقای دیگه میگه من پیدا کردم مثلا اخباری میگن بیان عام پیدا کردیم من اجمالی پیدا کردم یک آقای دیگه میگه نه من بیان پیدا کردم در بابه کشیدن سیگار خود رو روایت که در بابه ضرره دلالت میکنه اون آقای میگه نه دلالت نمیکنه بحث سر این است که این جور بیان آقای خوبی میفرماد مقلد برگرده مشکل مشکل میگه بیان نیست ایشونم برای عتیاب کنه خود این که بیان نیست خوب رقیت میخواد خوب دقیق بکنید نه این این عدل اختصاص و مشهد یا طبیعت بیان قبعه اقاب بلا بیان مالای علمون مثلاً اگر حدیث را اصلا قبول کردیم طبیعت لاتن خوزیل یقین وشن جوریست که خود به خود منطبق بر مغلط نمیشه علم و جهل مغلط رو نمیگیره یقین و شک مغلط رو نمیگیره یعنی یه وقتی اما میفهم نگاه بکنه چی گفتن اون مغلط نمیفهم به چی نگاه کنی که آمه چی گفتن این نه اینکه که اختصاص داره طبیعت این لسان دلی یک جوری است که مثلا از اون لاتنگوزل یقینی به شر در شباهات موضوعی موضوعیه مغلطه میگیره چون یقینه به شرک داره در خود دفیش. مشکل نداره که یقینا تاره بود و به داره مشکل نداره. اما <مید درستان الازدان> همین که بدونن دستگاه چه نظر، اولا عموم شعر رو بعد همین که بدونن که در اینجا دستاهی یک چیز داره ربطی به چیز دیگه‌ای یعنی که عمومیش عمش نمی‌دونن که و اینکه اعتبار به مخالفت امام با اونی که روایته یا اعتبار مخالفت امام با اونی که دستگاه سیاسی قائله میگم اگر مغلق هر من چرا اما رو سوال میکنه؟ خود این مطلب کبریت میخواد نمیخواد که این مخالف با خود قسمت هست خلاصه مطلب انصاب قضیه ای است که عدله اقلاق داره اما خود به خود قابل انتباه در مواردی در مورد مشتهد هست در مورد مقلسه انتبااق نداره. چون نهعناوی وجود نداره. ما از سر این مطلب خلاصش جمع بکنیم خیلی مفصلیه صحبت شد بسته. سه نقطه اساسی در اینجا هست یک نقطه راجع به کلام شیخ اعلام انن المکلر که شامل مشتهد و مقلد میشه از که مرحوم ناینی نا میفرماید نمیشه و لذا التفاظ رو ایشونه التفاظ تفصیلی گرفته نه التفات اجمالی این راجع به مرحوم عبادت شیخ و مثل مرحوم آرخوی میفرماند نه تأمین داره نه دیگران اده دیگری اذا رضای خوب بحث این است که در عبارت شیخ مکلف اطلاق داره شامل مقلد هم میشه یک بحث انصاف قضیه برای خود ما هم چون مرحوم نائینی شاگرد شیخ انصاری نیست برای تفسیر کلاب شیخ بسیار مصدر خوبی سراغ شه معقل نائینی قدس الله سره لیکن چون شاگرد ایشان نیست تشخیص این خیلی مشکل یعنی تشخیص اینکه واقعا مرادشه همین طور باشه که مرحوم نائینی این روشن نیست شاگرد مرحوم شیخ مرموم آشیانی در این شرحش نوشته مکلف شامل مقلب و مشعل هر دو میشه خود مرموم آشتیانی که در از سر این وزاینه نجردی ها بیشون میگفتن دسان و شیخ مرموم آشتیانی گفته شامل هر دو میشه لیکن گفته کما و زاهر و لب این عبارتیشون نشون میده که از شیخ نشنیده مثل آقای کوی مثل آقای کوی ها میان زاهرشونی که شامل هر دو بشه آز... شیرازی،, مجدد شیرازی یه عبارتی داره که میگه مرا از این التفاظ اون التفاظی نیست که در تکلیف معتبره التفاظ اجمالی به اصلاح ما ایشون التفاظ و التفاظ تفصیلی که ما اون ناینی گفته معنا نمیکنه ایشون میگه همه نافه در ان قرائت نا علی کتاب رسائل التفاظ یعنی این التفاظ زمینه این سه حالته قطع و ظن و شک چون یک مقدار از التفات در اصل تکلیف تأثیر داره یه قافل که تکلیف نداره می فهمون شیخ می گفتن من از التفات اون التفاتی نیست که در تکلیف شرط باشه مراد من از التفات چون زمینه زمین ساز این م... یعنی م... م... مقسم این حالته چون تا التفات سازه پیدا نکنه قرد ازن و شک برش پیدا نمیشه اون چیزی ای که ایشان از شیخ نرم میکنه نه با تفسیر ناینه می سازه و نه با این احتمال که مراد در شیخ در اینجا مراد در مکلف مکلف فعلی باشه قید از عزل سبب غیر بشه مثلا یا اگر مکلف مکلف فعلی باشه قید از عزل توضیحی بشه معلوم شیخ مراد چیز دیگری بوده این عبارتی که مرحوم آی میرزا شیرازی علامه تقریر نقل میکنه از مجلس درس شیخ این نشون میده که اون هم یعنی که مراد ناوی فرموده این تفسیر منئنده نه اینکه از شیخ باشه شیخ هم خودش این تعصیری را عباراتش نگفت. به هر حال من چون خیلی در این جهت آشنا بشین این شما رو, رو خیلی اعتماد به این مله ترین که این جهت کارا مراد شیخ این است اون است نیستن. در آخر که از فقها در 70 از 80 سال قبل بزنی که از اصولینه، حالا مراد ایشان دقیقاً چه باشه؟ ما دنبال خود اون مطلب هستیم نه دنبال کلام و توجیه کلام ایشان. بحث دوم این بود که این اناوینی که در عدل لحظ شده مثل نقض یقین به شک و اینها اینا خواسته به مشتهده انصاف مطلب این مطلب درسته اون وقت تره مسئله نیابت و تره مسئله تنزیل و تره مسئله روشیل و اهل خبره که این بزرگان فرمودن انصافا نمیشه باش موافقت کرد و اما این اناوین کدومی که درسته یک عنوان نیابت اگر به اصطلاح کاری رو که مشتهد میکنه فقط جنبه طریقی سرخ داشته باشه هم با نیابت نیابد درست آقای کویی فرانه دقیقی در این نیابت نداریم در امور طریقی فهم و اقلائی نیابت مشکل نداره. این اشکال آقای کویی اگر این که لا بیان احتیاجی به خبروییت داره طریق سرخ سنید طریق سرخ سنید خوندن آزمایش کسی که داره برای افراد آدی بخونه اما اگر همون خوندن هم احتیاج به تخصص داره خوب داره در اینجا اینی که مرموم آیه،, آیه،, آیه،, آیه،, آیه اراقی یا مرموم شیفتان نیابد نیابد درست نیست در خوب رویت درست نیست چون در خوب موضوعیت داره خوب و حدث او تأثیر داره نیابد مهم داره رجوع اله اهل خبره میشه لیکن رجوع اهل احل خبره احتیاج به, به اصطلاح اون احکام خبره رو نمیگیره مقلد رو منظره مشتهل قرار نمیده این مطلب آرکی و انصافاً به این دوم اشبهه به این دوم یعنی انصافاً همین تشریص بیان و لا بیان، تشریص خبره این جزء به اصطلاح خبروییت انسان. مسئله تنزیل که مرحوم آیه اصفهانی فرمودن این مسئله تنزیل رو سنید یه تصرف تو دسان ادله عدلت اشعاد و تقلید رو حمله بر تنزید کرده. اون اصلا درست نیست، اصل مبنا درست نیست اون اصلا اصل مبنا، مبنای صحیح به نظر نمیرسه این خلاصی بحث در این جمع جهت سومی که مرحوم استاد مطبع شارمودر که من سریعا عبارت ایشان رو میخونیم مرحوم شیخ انصاری فرمودر ازلطفت علاقه شرعی در کفایه اشکالی کرده که مراد از حکم شرعی حکم فعلی است نه حکم انشائی این رو به اصطلاح در کتاب ام... کفایه فرومده ایشون آی خودی فرمودن به این که بله در همین جلد دو صفحه 9 از این چاپچه جلد 2 مصباح و حسب تایید تقی... استخریم مصباح حضرت آثار مرحوم استاد 47 در جنوش در اینجا قرمون به اثانی در صفحه نو در شرح عبارت کفایی لابد من تخصیص حکم بالفعلی لاختصاص احکام القرد ماه ازا تعلق به حکم الفعلی مراد باز حکم فعلی باشه بعد مرحوم استاد فرمودن در صفحه 11 در تعلیق بر کلام کفایی و اما ما افاده فلی کفایی من انهو لابدن یکونه المراد من خوص فعلی چون اخری نیست بر قدو فهمشایی صاحب خلتون مرجوم استاد اشکال میکنن به مرحوم صاحب کفایه میفرمن خلتون دین ال انشاء الله بدائل بعث را زنج ولی انشا بدائل بعث را این مطلب استاد ذکرم شما هر وقت عبارات بزرگان رو میخونیم باید یک زمینه های سابق ذهنی داشته باشیم مثلا کوه یخ مثال کوه یخ شد نشه این عبارت ایشان ناظر از به اون تفسیری که از کفایه نقل شده چون معجم کفایة حکم رو دارای چهار مرتبه 4 نوع میدونه 4 مرتبه میدونه حکم اختزایی، حکم انشائی، حکم فعلی و حکم منجع است. اصطلاح ایشان اینجوریه 4 و فرق بین حکم انشائی و فعلی رو اینجور گذاشته ایشون. الا انشاء به دائل جعل، به دائل بحث و زرج این انشائیه. الا انشاء به دائل بحث و زرج این فعلیه. این اصطلاح فعلی در اصطلاح کفایی این گرسن. اخلات جدا چجوری معنا کردن عبارات کفایه رو اینجوری معنا کردن جاهایی که فقط انشاه هست اما باعث و ساز نیست این میشه انشایی هاش هم فرض کنید مثل احکام امتحانیه این رو بکن برای امتحان یا در عبارت معروف برای تحکم و استهزاء ذل انکه انتل عزیز والحکیم این برای استهزائه این هم. پس هر نوع جعلی هر نوع انشایی که درش دایه بحث نیست این میشه حکم انشایی هر کدام که درش دایه‌ی باعث و زجر هست میشه حکم فعلی این تفسیری که اینی که استاد ما فننه لا فاو فه خلتون بین الان شاء الله بدائل و زاج و الانشاء بدائل باعث و زن این انشاء الا بدایی مراد انشاییه اون دومی فعلیه من دیروز ارائه کردم که در بحث آینده اقسام فعلیت رو براتون بیان بکنم یکی از فعلیت ها منا شوینه یکی از معانی حکم فعلی فعلیته اینجوریه یعنی انشائیته به مجرد انشاء باشه ولی توش دایه باعث و رژو نباشه این میشه انشایی اما اگر درش دایه باعث و رژ رو برانگیختن و ترک کردن باشه این میشه انشایی به فعلی فإن الانشاء به ان لم يترتب علیه اثر اگر به دایه باعث نباشه درسته اگر امتحانی باشه اثر نیست كما ذکر او این كما ذکر پای هم ناظر به حفظ هم تفسیر و هم این اثر که اثر نداره درست الا انه لیست من مراتب حکم اصلا این در در حقیقت یک قول معروف اشاره میخواد میخوان بفرمایید نه یکی هم تطبیقش در ما نحنفی و هم خود مطلب فی نفسه میخوان میگن درست نیست حالا من فردا انشاءالله عبارت الله شاگرد صاحب کیو چون من خیلی مغلدم جایی که بشه به نزدیکترین مصدر برسونیم شو مرحوم آقای بروجردی شاگردی که فایع اینجا رو شرح از به است مرحوم استادشون من فرقه عبارت آی درجدی نمیخونم قدس الله سره مرحوم صاحبشون شرح داده عبارات البته تو خود کیفای هم هست خیلی مغلغ نیست اما خیلی واضح داره و شاگرد ایشون هم خودشون از روزور ما خیلی دل میخواد که با توضیحات بیشتری باشه مرحوم صاحب کیفای که 4 مرتبه قرارداد حکم اختزایی حکم انشایی حکم فعلی حکم منجز این یک تقسیمی است که مرحوم صافی پای کرد ان فردا شعر میتون از عبارات های گرجدی میخوریم فرق بین انشایی و فعلی هم به این گذاشته انشائی انشاء به بدائل با اثر ازج و فعلی انشاء بدائل با اثر ازج این درکی پای کرد از اشکالاتی که به شده که ان شاء الله خود میخوریم فردا خدای گرجدی هم اشعار میکنه البته این اشعال های گرجدی نه دیگران هم دارن در انجام آیه خویی داره خلاصه اشکالاتی که بهشون هست که اینا اقسام حکم نیستند اشتباه شده البته پای مثلا حکم اقتضایی ما حکم اقتضایی نداریم <تصفيق> اگر یک چیزی ملاکش ملاک الزامی بود این حکم نیست ملاک حکم نیست فرصی اون فلان عمل ملاکی داره الزام الزامان و باید این کار رو انجام بدید مثلا تمیز کردن شرم قوانین رانندگی ملاک الزامی داره این ملاکه نه حکمه اسم حکم نیست و به قول اده از علمای از بعد از ایشان این اقتضاالحکمه نه حکم اقتضایی بقید بکنید اقتضاالحکمه ملاکات حکم نیست دهد تا تو چه چیزی فینسته خوبه برای صلاح جامعه هست. این حکم نیست وقتی رفت تو مجلس مجلس موافق هسته چرا ایشان آمدن مرحله ملاکات رو اسمشو حکم گذاشتن درسته ما قبول داریم مرحله ملاکات هست داریم در مرحله ملاکات حکم نیست اتتزاء حکمه در حکم انشائی خوب دقت بکنید مثلا چه موضوع حکم انشائی اون که به بذایئه بحث و زجر نباشه اشکال اول وی ایشان اینه اصلا این حکم نیست این انشاء حکمه صورت الحکمه این اشکال های خویش و شورایش اشکال اصطلاح خویش پس در حقیقت یک بحث این است که اصلا این تقسیم بندی ایشان درست نیست خوب دقت بکنید یه بحث اینه که این مبنا اصلا درست نیست این تفسیری ایشان برای مراسم چهاردانه حد حکم اقتضایی انشایی، فعلی منجز، اصلا این تقسیم درست نیست. مثلا حکم اقتضایی ما نداریم، اقتضاء الواجبه. حکم انشائی به معنی که ایشون گفته نداریم، صورت رو حکم است، حکم اگر گفت زغن نکنت راج به حکم حکم نیست که اگر گفت مثلا برای امتحان برون کار انجام بده و واقعا نخواست این حکم نیست. این مراد اشکال استاد روشن شد الا انه ليس من مراكز الحكم اصلا طبیعیه اشکال به صاحب کفایه این است که اصلا این مبنا درست نیست دقت کردید در حقیقت ایشون می‌خوان اینو بگن مروه استاد اصلا. اصلا این حکمی این که انشاء صرف باشه توش دایه بعض زرجنه باشه حکمی اونی که به دایه بعض زرجنه تازه اون حکمه اون انشاء اونی که شما اسمش رو میشه حکم فعلی همون حکمشه اون حکم اصلا این حکم اینشایی حکم نیست صورت رو حکمه اکس نیست از ازو خواب یادت می بینه خب حکم دیگه بعد فهمید خود مرحوم های خویی حکم انشایی رو همونه که به دایره بحث رجعی اون انشاه، انشای واقعی اون رو انشایی میدونن فعلیت به تصور مرحوم های خویی که دیروزم عرض کردم و این تصوری که به هم داره فعیلیت و حکم به تحقیق موضوعش می دونن. این یک تفسیر دوم از فعیلیت پس تفسیر اول از فعلیت انشایی که به نباشه این انشایی به باشه, باشه، فعلی این معنی اول اوامر امتحانی انشایی هست اوامر واقعی فعیلی پس مراد کفایی ظاهرن این حالت ما اعتنید مراد چیز دیگه باشه حالت ظاهر مراد رو سی اینه مراد کفایی ف این انشاء بدعهد تهدید کمافی ما فی قولی و عمل ماشیتوم او به تهد کم تهد کم نیست زلا او غیر علیه الحکم. از آنکه لا یطلق عليه الحاک اذل انشاء بدعت تهدید کردید اصلا این حکم نیست شد پس اشکال میکند به کیف کیفای حکم میخطر حکم نیست این نه نشده خویل ما خودم دارم تو توضیح حکم میخطر زایی نیست حکم نیست صورت الحکم. بعد ایشان وارد اون بحث میشن. و ما انشاء ابتدایی بحث و جد و علیه ال هو تازه اون میشه. این باعث بهدا روش عبارت واضح نیست. یعنی عبارت رو باد استاد استاد گفتم این اینجور گفته خود مبنا غلطه. متوجه خیلی واضح نه بود مشبتو نزد نه ولی خب اون استاد بودن که چند دور سطور فرودان چند بار خارجی دوریش شد پنجبه خارجی شون ایشون موجزا ناظر به کلام سارکفایه و نظر نهایی که این اشتباه در سارکفایه مثل اون بحث حکم اقتضایی اونم حکم نیست مثلا حکم منجز حکم منجز حکم نیست تنجیز در حکمه یعنی چی ایشون فر حکم منجز لزوما گفت اینکه بیشتر از اون حکم ولی اینکه ایشون چهار تا برتر بسازه حکم، یکی ایش اقتضا حکمه، یکی صورت حکمه، یکی تنجید حکمه، حکم فقط همونه. انشاء به دایه بزرگ حکمه. بله این حکم گاهی شعنی به تعبیر ایشان فعیلیست و اون اونجاست که موضوعش محقق بشه. مثلا، الان خداوند متعال برای ما حکم قضایی که در وقت زوال نماز ظهر بخونیم. الان که قبل زواله. این حکم هست، این حکم انشاع شده خوب ایشان. این حکم هست، هم هست. اما این حکم فعلی نیست. چه فعلی میشه ازان وظیفه گفته؟ این مراد آیه‌ی خوییه. آیه‌ی خویی میفرما اگر چون حکم میاد، حکم ف... لكن فعلی نمیشه. چه فعلی؟ مراد مرحوم ایشون از استادشون هارون نایینی گیرسن. پس تا اینجا دو تا تفصیل. چون وقت وقتمون شد از فعلیت ما براتون عرض کردیم، هر دو تفاسیر دیگه راجع به فعلیت که اصلا فعلیت حکم به یعنی چی؟ اول اون لوچت بشه تا بعد بفهمیم که آیا واقعا هر با کفایت، ظاهرش اینه که حکم اطلاق داره البته وقت خواهی مگفت که اینش را حق باکفای از وقت خواهی مگفت که نمیم معنی که نگفت معنی دیگه اینشالا فردمون تحرز میشه اسلام